سلیمان مست قونی رجب 6245 سرم روی میز افتاده و خوابم برده بود خواب وحشتناکی می دیدم که بختت پیشش پادشاه بود یک گاوه نر بزرگ و عصبانی توی کوچه ها داشت دنبالم می کرد بیان که بدانم چه کار کرده که این حیوان ملعون را این طور عصبانی کرده، دو تا پا داشتم، دو تای دیگر هم قرض کرده بودم و حالا بود و کی ندو. همانطور که دکههای مردم را چپه و میوه ها و سبزی ها را لگت میکردم و می دویدم، از ترس جان توی ای فرعی پیچیدم. نگو کوچه بنبست بوده. آنجا یک تخم پرنده بود انگار، قد شتر همان موقع پوستش ترک خورده و از داخلش یک جوجه زشت بیرون پرید. خواستم از آنجا فرار بکنم. اما یک دفعه سرکله مادرش توی آسمان پیدا شد. طوری زلزت بهم انگار تقصیر من بوده که جوجهش اینقدر زشت شده. پنجه های مثل خنجرش را باز کرد و تا خواست به طرفم حمله کند خیس عرق از خواب پریدم. نگاه کردم دیدم توی میخانه پشت میز کنار پنجره خوابم برده بود. دهنم مزه گندی می داد. انگار میخ زنگ زده لیس زده بودم. زبانم از تشنگی به سقم چسبیده بود. خواستم بلند شوم، اما نتوانستم دستم را تکان بدهم. نتوانستم سرم را که عین کوه سنگین شده بود از روی میز بلند کنم. سر جایم همانجور جور ماندم و به صداهای آشنای میخانه گوش کردم. همان موقع گوش تیز کردم ببینم سر میز بقلی چه دارند در گوش هم پش پش می معلوم بود بحث آتشینی در گرفته آنجا و یک دفعه آن کلمه وحشتناک را شنیدم کشتن اولش گفتم مزخرفات مستانه است و اهمیتی ندادم توی میخانه از اینجور جور صحبت‌های چرت و پرت زیاد می‌شود و هرکس هرچه به دهانش برسد می‌گوید اما صحبت‌های این آدمها انگار حال و هوایی دیگر داشت. آخر سر فهمیدم که توی حرف‌هایشان جدیاند. موهای تنم سیخ شد. اما موقعی پاک وحشت کردم که ملتفت شدم چه کسی را می‌خواهند بکشند. شمس تبریزی تا وقتی پا شوند و بروند همانجور سرم روی میز ماند و خودم را به خواب زدم. وقتی مطمئن شدم که رفته اند، پا شدم و فریاد زدم. خریستوس، بیا اینجا، زود باش. خریستوس دوان دوان آمد و پرسید، باز چه شده سلیمان، حالت خوب است؟ کلمهها ها توی گلویم گیر کرد. نتوانستم حرف بزنم، یک دفعه به همه مشکوب شدم، شاید دیگران هم توی این توطعه دست داشته باشند، باید دهانم را می بستم و چهار چشمی همه جا را می پاییدم. گفتم، هیچ چیز نشده، گرست یالا برایم آش شکنبه بیاور، با سیر فراوان، باید هوشیار بشوم خریستوس به طرز نگاه نگاهم کرد اما چون به خورده فرمایش هایم عادت داشت دیگر چیزی نپرسید چند دقیقه بعد یک کاسه آش جلوم گذاشت که بخار ازش بلند می شد من هم همانجور داغ داغ آش را سرکشیدم. به خودم که آمدم فوری رفتم دنبال شمس تا بهش هشدار بدهم اول به خانه مولوی رفتم آنجا نبود بعد به مسجد مدرسه چایخانه نانوایی و حمام سرزدم. توی محله صنعتکارها همه دکانها و انبارها و پستوها را گشتم حتی پیش پیرزن کلی 150 ساله هم رفتم که توی خرابه ها زندگی می کند. گفتم شاید حوث کرده باشد جادو جنبلی بکند یا فالی بگیرد از همه پرسجو کردم ترس به جانم افتاده بود با خودم می اگر دیر کرده باشم اگر کشته باشندش آن وقت چه ساعتها بعد خسته و پریشان راه میخانه را در پیش گرفتم و درست از سر نفش کوچهی رد می که با شمس دماغ به دماغ شدیم شمس لبخندی زد و گفت اوه ببین کی اینجاست سلام سلیمان کجا با این عجله گفتم آخ بلاخره پیدایت کردم، خدا را شکر که زنده ای بعد نتوانستم خودم را نگه دارم و بقلش کردم. شمس همین که از میان دستهایم خلاص شد قهقه قه زد. به نظر سرحال می آمد، گفت، البته که زنده ام، مگر شبیه ارواح شده ام، زورکی لبخند زدم. شمس انگار به چیزی شک کرد. گفت دوست من چه شده؟ مشکلی پیش آمده؟ همه چیز روبراست؟ آب دهانم را قرد دادم. با خودم گفتم اگر حرفم را باور نکند، اگر فکر کند بخار شراب بالا زده و خیالاتی شده آن وقت چه؟ شاید هم همان طور بود. حتی خودم هم نمیتوانستم مطمئن باشم چیزهایی که شنیدهم درست است با این همه تصمیم گرفتم موضوع را برایش تعریف کنم گفتم میخواهند بکشندت نمیدانم چه کسانیت نتوانستم صورتشان را ببینم اما خواب نمیدیدم یعنی خواب میدیدم ولی آن خواب به اینها هیچ ربطی نداشت، مست هم نبودم، یعنی چند پیاله بالا انداخته بودم، اما شمس دستش را روی شانه گذاشت، گفت آرام باش سلیمان، من درکت کردم، نگران نباش با تعجب پرسیدم، واقعا درک کردی؟ وقتی خود من خودم را درک نکردام او یعنی چه چیزی را درک کرده بود. گفت: «بله الان هم به میخانه برکرد. نگران من نباش. گفتم: «نه نه هیچ جا نمی روم. تو هم نمیرو. این آدمها قصدشان جدی جدی است باید مراقب خودت باشی به خانه مولوی نمی توانی برگردی اولین جایی که می همان همانجاست شمس سکوت کرد گفتم بیا به خانه من کوچک است شلوخ پلوغ است اما اگر برای تو مسئلهی نیست بیا و تا هر موقع خواستی آنجا بمان. شمس گفت سایت کم نشود شرمنده میکنی، می کنی. اما هر کاری با انایت خدا صورت می گیرد. این هم یکی از قاعده هاست. قاعده سی و ششم از حیله و دسیسه نترس. اگر کسانی دامی برایت بگسترانند گسترانند تا صدمه ای به تو بزنند، خدا هم برای آنان دام می گسترد. چاخکن اول خودش تهشاه است. این نظام بر جزا استوار است. نه یک ذره خیر بی جزا می ماند. نه یک ذره شر. تا او نخواهد برگی از درخت نمی افتد. فقط به این ایمان بیاور. شمس پس از گفتن این حرف ها چشمکی زد و بغلم کرد. حالتی داشت انگار می‌خواست وداع بکند نتوانستم مانع رفتنش بشوم برگشت و وارد کوچه گلالودی شد که به خانه مولوی می‌رسید مدت زیادی پشت سرش نگاه کردم حال عجیبی داشتم از تو می‌لرزیدم و من سلیمان مست قونیوی طوری که انگار پس از روزها ننوشیدن حالا شروع به نوشیدن کرده باشم مثل بید می‌لرزیدم